داستان چهارم کلاه دامادی از تخت کاله به طرف چکمک چیلار که بروی کمان طرف راستت میفتند جوانی که لباس زمخت لاجه تنش بود وارد مسافرخانه شد رفت به طرف مسافرخانه چی که کنار طولنبه آب روی سندلی حسیری کوتاه نشسته بود و دانه های تسبیه کهرباییش را شطرق به هم می کن. هر خوبی بدی از مادیدی حلال حلالمون کن دور موشقا اگه قسمت باشه فردا صبح زود را میفتیم با دو دستش دست های مسافر چی را گرفت و با احترام فشرد و تکان داد مسافر چی گفت پس داری میری ما که بدی ازت ندیدیم اگه حقی هم هست حلالت. چی کار میشه کرد دور موشقا دهو که نمیشه خالی گذاشت پاییز دوباره میام اینجا اگه خدا بخواد. مسافرخانه چی پرسید؟ این موسا هم اهل ده شماست محمد. اهل ده ما نیست اما نزدیکه. از ده ما تا ده اونا هشت ساعت راهه. این موسا چرا هیچ وقت نمیره ولایتشون؟ پنج سال زمستون و تابستون اینجاست. محمد گفت؟ نمیدونم. اما به اتاقش که رفت با خودش گفت؟ راستی این موسی واسه چی پنج ساله نمیره ده؟ اتاق مسافرخانه که فقط یک پنجره کوچک داشت، زود تاریک می شود. محمد لامپای پشت داری را که به میخ دیوار آویزان بود، روشن کرد. توی رخت خوابش دراز کشید. دو دستش را زیر سرش گذاشت و به فکر فرو رفت. این موسا چرا اصلا به ده نمیره؟ از پایین سر و صدای کل پس ها که داشتن کله گوسفندها را توی دیگ بزرگ میجوشاندند. صدای کشیده شدن پاشنه کفش روی سنگ فرش شنیده شد. موسا بود که داشت می آمد. این صدای پای او بود. موسا سبد را از پشتش برداشت و جلوی در گذاشت. آمد توی اتاق از اینکه لامپ زود روشن شده بود هرسش گرفت. اما چون هم اتاقیش قرار بود روز بعد برود حرفی نزد. گفت لباست قشنگه چند خریدی؟ گرون میدونم گرونه. خب چند؟ حدس بزن. چند میارزه؟ اگه صد چو خریده باشی خوبه. محمد موزیانه خندید. 96 و چو خریدمش. خوب خریدی. میخواستم یه کلاه مخملی هم بخرم. لامستب از لباس گرونتره صد لیره است. همین که صحبت کلاه مخملی به میان آمد، حال موسی دگرگون شد. او هم مثل دوستش، تا باز روی رخت خوابش دراز کشید. سرش بزرگتر از حد معمول بود. زیر پرکه چشم چپش پاره شده بود و چشم طرف پایین بزرگ شده بود. جای بخیه ها روی پیشانیش پیدا بود. روی گونه راستش هم جای زخم عمیق دیده میشد که از کنجل لبش شروع میشد و رو به بالا می رفت. محمد گفت: رفته بودم از مسافرخونه چی حلالیت بخوام. درباره تو می پرسید. چی چیه منو میپرسید؟ پرسید چرا ایج وقت نمیره ولایتشون؟ به اون چه دخلی داره؟ سکوت کردند. کمی بعد محمد گفت: گفته بودی یه کار نیمه تموم داری توی ده. من که درست نفهمیدم چی بود. موسا حرفی نزد. اوهی موسی با تو هم. بگو دیگه چرا نمیریده؟ من دیگه هیچ وقت نمیرمده. چرا؟ قهر کردم. مگه چی شده بوده؟ اگه به کسی نگی؟ بیشرف هم اگه بگم. من تو با هم به این استانبول اومدیم. مگه نه؟ آره با هم اومدیم. اما این دومین بار منه که به استانبول اومدم بهت نگفته بودم که یه بار دیگه اومده بودم نامادری هم یه دایی داره منم بهش دایی میگم این دایی یه دختر خونده داره اسمش گالیه از من سه چهار سال کچکتره برای همین با هم بزرگ شدیم یه روزی من گافمیشا رو برده بودم لب رودخونه واسه چرا دیدم یکی بالای تپه صدا میکنه موسا آوی موسا نگاه کردم دیدم گلی خودمونه گفتم چی شده گلی چرا داد میزنی گفت بدو موسه حالا تو بودو بیا ببین یه مرد اومده توی ده یه چیزی روی سرش شبیه تاج خروس. منو گلی دویدیم و رسیدیم جلو خونه. دیدم راست میگفته اونجا یه مرد کلاهی وایستاده بود ما توی اون ده تا اون موقع کلاه مخملی نایره بودیم گفتن یارو مأمور مالیاته کت خدا مرد کلاه مخملی با خودش برد ما هم زدیم زیر خنده، آی خند دیدی. آی خند دیدیم، از چشمای گلی حتی قبل از اون که بخنده عشق می اومد. خلاصه کشش ندم، این گلی بزرگ شد و شد خوشگل ترین دختر ده. دیگه هم به حرف ما گوش نمیکرد. همه این ده دنبال گلی بودن. می شوهرش بدم به یه مرد غریبه. هیچ رایم نبود که گلیو ببینم و دو کلام باش حرف بزنم. توی ده ما یه زنی هست بهش میگن شیرین خاتون شعر میخونه نامه میبره نامه میاره و میکنه، چیز میز میفروشه، خلاص هر کنی ازش برمیاد میاد دردم و به بشین خاتون گفتم و اونم به گلی گفت خلاصه اینکه یه شب گلی و جلو در پشتی طویلشون دیدم گفتم گلی لام است. منو آتیش زدی که آدم خودش رو از اید عید نشون نمیده گفت مگه نامادریم میذاره گفتم آخر خراقبت این قضیه ما چی میشه؟ شنیده هم شوهرت بدم بدن به عارف پسر کلمه محمد. اگه زن عارف بشی خودم میکشمت اینو بدو. گفت کی زن عارف میشه؟ گفتم گلی لام از سب زن من میشی گفت نظر تو میشم نظر عارف گفتم دختر منو خون بی جیگر نکن بگو خاطر کیو میخوای پس گفت هیشگی خاطر هیشگی رو نمیخوام گفتم پس دردت چیه گفت یادته یه روز اون چند سال پیش یه مردی اومده بود دهم و یه چیزی رو سرش بود شبیه تاج خروس گفتم منظورت بمور مالیاته فهمیدم به اون چیزی هم که روی سرش بود کلا مخملی میگن گفت از اون کلا مخملی یا یه دونم تو بخر اینو گفت و دوید رفت توی طویله کلون درو هم از پش انداخت در از پش هل دادم گفت هل نده به خدا داد میزنم ها. گفتم دختر آخر آقابت این کار ما به کجا میکشه؟ خب یه چیزی بگو دیگه. گفت من حرفم و زدم دیگه. فهمیدم اگه یه کلوم مخملی بذارم سرم گلی زنم میشه. روز بعدش رفتم بخش. توی عمرم دومین دفعه بود که میرفتم بخش. همه جا رو گشتم توی هیچ مغازه کلوم مخملی نمیفروختن. آدم رو نگاه کردم. کسی رو ندیدم کلوم سرش باشه. یه دفعه دیدم دو تا مرد کلام دارن از روبرو میان. افتادم دنبالشون. پرسیدم اینا کیان؟ گفتن یکیشون بخش داره، اون یکی هم معلمه. با خودم گفتم پس آدم حسابیه ها کلام سرشون. این گدی دختر آقلیه ها. این کلام اخمالی هم به مرد جماعت میاد. به مردای یه جور مردونگی دیگه ای میده. گفتم آفرین به تو دختر. منم اگه خدا بخواد یه میخرم دوی ده ما هنوز کلام اخملی باب نشده بود گفتم کلام اخمالی و میذارم سرم بعد یه عروسی حسابی میگیرم تا عارف به سر کلمم مد انگوش به بمونه بده برگشتم میخواستم بعدم به شهر برم و کلام بخرم اما همون موقع اسم من واسه سربازی در اومد شبیه که قرار بود فرداش برم سربازی دوباره گلی و جلو در پشتی طویلشون دیدم تا چشمش به من افتاد گفت بس چی شد گفته بودی سرم. دروغ گفتم دختر کلم اخمنی خریدن که کاری نداره رفتم بخش مغازه کل پیدا نکردم الانم دارم میرم سربازی لام و همین که برگشتم یه کلام میخرم دوید توی طویلو در رو از پشت بست و گفت بی خودی ها یا، به خدا داد میزنم گفتم گلی قسمت نشو کلام سرم بذارم اسمم واسه سربازی در اومد منتظرم میمونی تا برگردم گفت. حالا تو فعلا کلوم اخمالی بذار سرتو برگرد؟ شیرین خاتون رو فرستادم بهش بگه ما از اوناش نیستیم که تفمون رو لیست بزنیم حرفمون حرفه کلوم اخمالی هم سرمون میذاریم اونم سر حرفش بمونه منتظرمون بشینه وگرنه خونش پای خوشه کشش ندم رفیق رفتیم سربازی توی سربازی ست و استان و پنشت تا شهرستان دیدم چشمم همش دنبال کلوم بود کلامخملی لام مسب به مرد حیبت میده نیگاه میکنی انگاه از روبهرود پادشاه میاد بعد یارو مخملی رو که از سرش ورمیداره میبینی تنها چیزی که نداره حیبته خودت میدونی که توی سربازی پول سیگارم به زور گیر میاد چه برسه به كلامخملی کارت پایان خدمتم که گرفتم بده برگشتم شیرینخاتون از ازم پرسید این گلی ورد زبونش شده کلامخملی مخملی دیگه چه سیغهایه شبش گدی و جلو در طویله دیدم. گفتم دختر ببین سربازی هم تموم شد. حالا راضی هستی؟ گفت پس کلوم اخمالی چرا رو سرت نیست؟ تا کلم اخمالی نباشه نمیشه. گفتم گلی آخه من تازه سربازی برگشتم. اونجا با آدم کلوم نمیدن که... بذار مدت بگذره کلوم اخمالی هم میگیرم. میخواستم دستش رو بگیرم که فرار کرد رفت تو. فقط میگفت هیچ چیز دیگه نمیگفت. رفتم شهر کلم اخملی گرون بود نستیکش نمیشد رفت دیدم نمیشه برگشتم ده. شب که شغل گلی ها جلو در طویله دیدم چشمش که به من افتاد گفت کلم مخمدید کو؟ گفتم دختر یه دقیقه وایسا گوش کن من برای اینکه بتونم کلم مخلی رو سرم بذارم باید برم دیار قربت رای دیگه این نداره همین فردا را میفتم میرم استانبول. کار میکنم فولامو جمع میکنم یه کلام می میخرم و برمیگردم ولایت خوب الام از سب تا خواستم دستش دستشو بگیرم دوید رفتو و از پاش بست گفت تا کلام اخمالی سرت نزاشتهی بر نگرد گفتم دختر اگه خدا بخواد و قسمتم باشه کلام اخملی رو سرم میذارم منتظرم بشین اگه سر حرفت نمونی خودم میکشمت کشش ندم رفی اومدیم به این استانبال خراب شده. اولش شدم سپور شهرداری. هرچی کار می جون میکنم پول کلاخملی جور نمیشد. مزخرفترین کل ماخملی چوق چو بود. دیدم اینطوری نمیشه. بعد شیش ماه سپوری رفتم آبدارچه یه اداره شدم. بعد از چهار ماه چهل چوق جمع کردم. رفتم مغازه فروشی کلا اخملی شده بود پنجاه چوق. این همون کلم اخملییه که میگن گربه شیر میکنه. کلا 20 بیزچوقی هم هست اما شیر و گربه میکنه <تصفيق> با خودم گفتم اگه یکی از این کلا مخمری های بیخودو بگیرم و بذارم سرم و گلی کلا روی سر ما رو نپسنده به چه دردی میخوره؟ سرتو سر تو درد نیارم رفیق من سه ما اینجا پنج ما اونجا سخت کار کردم و صد لیره پول جمع کردم کلا مخمری شده بود 80 چوق رفتم کلا فروشی ببین رفیق آدم باید شانس داشته باشه این دفعهم هیچ کدوم از کلاها اندازه سرم نبود. همش کوچیک بود. کلا مخملیا رو که سرم میذاشتم انگار پروانه روی سرم نشسته بود. با خودم گفتم خیاتی چیزی نیست که یه کلا واسه خودم سفارش بدم. گفتن این کلاها روی اندازه است. قد سرمه کلا نمی‌دوزن. توی استانبال به این بازارကြီး هر چی کلا فروشی بود گشتم. ببین چه کله‌ای دارم که هیچ کلایی بهش نمیخوره آخر سر توی ویترین یکی از کلا کلا مخملی گنده دیدم. رفتم تو پرسیدم این کلا مخبری واش ویترین چنده؟ گفت فروشی نیست. اگه فروشی نیست چرا گذاشتیش پشت ویترین؟ کلا فروش گفت این کلا برای تبلیغاته. واسه هر چی خوب باشه حالا بذارشون سرم ببینم چطور میشه. کلا فروش تا کلا رو از پشت ویترین در آورد و گذاشت روی سرم بنای خنده رو گذاشت و گفت ماشاءالله تو هم از اون کله گنده هست یا گفتم این کلا چند؟ فروشی نیست، اما خب صد لیره بده تا بفروشمش. صد لیره که نمیارسه. خود دانی. اما همچین کلاه بزرگی سخت پیدا بشه تا بتونی بخری و سرت بذاری. من هم کف دستم شطرق کوبیدم روی سرم و گفتم تو هم همچین کله گندهی سخت پیدا کنی تا بتونی کلاه بفروشی. کلا فروش از این حرفم خیلی خندش گرفت و چونه رو خیلی طولش نداد. کلا و هشتاد چوق داد. خلاصه. کلا رو گذاشتم روی سرم. چهار سال شده بود که از ده اومده بودم اینجا. با خودم گفتم. خب دیگه برمیگردم و بساط عروسی را می دازم. کلا به سر از مغازه کلا فروشی اومدم بیرون. تا پامو گذاشتم بیرون رفیق. کلای روی سرم انگار بال در ورد. انگار کن پروانه بود روی سرم. کلا پروانه شده بود رفیق تو یاسمون پرواز میکرد کار ما رو ببین تو رو خدا گلی چند سال مدام میگه کلا مخملی کلا مخملی. من ده سال میگم کلا مخملی کلا مخملی. چهار سال کار کردم تونستم یه کلا مخملی بذارم روی سرم اونم پرواز کرد رفت منم پشت سر کلا تو هوا پرواز کردم رفیق کلا پرواز میکرد من پرواز میکردم کلا رو زمین میشست من رو زمین میشستم همین که میخواستم بگیرمش کلا دوباره پرواز میکرد نمیدونستم این کلاه قسمت من هست یا نه. ملتم جمع شده بودن و به ریش هم میخندیدن. خب به خندیدن این کلا و بگیرین. کلا انگار جادو شده بود. هیچ جوری نمیشد گرفتش. همونجور که دنبال کلاه میدویدم. انگار یک دفعه توی سرم رد و برخ زد. نگو از بس حواسم پی کلاه بوده. زیر ترانوای موندم. دیگه نفهمیدم چی شد. از حال رفتم. اما میگفتن توی بیهوشی هم مدام میگفتم کلاه کلاه کلاه گرفته بودن و هر دومونو توی ماشین گذاشته بودن و برده بودن مریضخونه. یه هفته چشام بسته بود اما بازم میگفتم کلاه کلاه این چشم چشممو که میبینی اون موقع معیوب شد. کلاه احمدی رو گذاشتم سلامم مریضخونه اومدم بیرون. از ترسم یه دستمال از بالای کلاه رد کرده بودم و زیر چونم گره زده بودم تا نکنه دوباره بپره بره. بدون هیچ اتفاقی سوار کشتی شدم خدا رو ازا مرتبه شکر رفتم روی عرشه بیرون رو نگاه میکردم و با خودم میگفتم گفتم ای استانبول سرم چه بلاها آوردی تو کشتی سود کشید و راه افتاد همین که کشتی راه افتاد بادش اومد هم دستمال و هم کلاه برداشت و, و برد داد زدم کلاه کلاه کلا مخمنی عین مرغ ماهی‌خوار توی آسمون پرواز میکرد. ملتم دورم جمع شده بودن و همین که میگفتم کلاه کلاه بهم هم میخندیدن. نتونستم جلو خودمان بگیرم. دنبال کلا پریدم بالا. توی آب کلا گرفتم. بقیهش نمیدونم. نگو کشتی رفته بوده و من مونده بودم و کلا. از دریا درمون آورده بودن و برده بودم مریض خونه. هیچ جور نتونسته بودن دستم واس کنن و کلا از دستم در بیارن. این لبم که میبینی ناکار شده اون موقع که میپریدم توی دریا به آهن کشتی گیر کرده و پاره شده. بعد دوم از مریض مرخص شدم. این دفعه کلا ها توی این چمدون چوبیم گذاشتم. سوار کشتی شدم. میگفتم کلا از توی چمدون که دیگه نمیتونه برباز کنه. چمدون سفت گرفته بودم. آره رفیق اینطوری رفتیم و اون طرف بغاز از کشتی پیاده شدیم. سوار اتوبوس شدیم. راننده نهازاش چمه با خودم ببرم توی اتوبوس میگفت الا بلا باید بذاریم توی بار بند چمدون کنار مسافر قدقنه. خب منم اگه کلاو همینجوری ولش میکنم. کلاو سرم گذاشتم و دادم. اتوبوس راه افتاد. راننده هم آی تون میروند. آی تون میروند. گفتم آخه اینقدر تون نرونین این اما مگه گوش میکرد. خلاصه رفیق کلا خلاص سرم بلند شده از پنجره پرید رفت بیرون خدایا این چه کلاهیه ما هم که ارزین نگه داشتن یه کلاه هم نداریم انگار اگه اینو یه بار گلی رو کله ما میدید و عروسی سر میگرفت میذاشتم پو ارواز کنه بره اونجایی که عرب نینداخت خلاصه شروع کردم به داد زدن کلا کلا مسافرا میخندیدن راننده ام اتوبوسو نگران نمی نپرس که چه جوری خودم از پنجره پرت کردم بیرون رفیق همین که از پنجره پریدم بیرون لعوله برده شدم، اما کلا هم توی دستم بود، دو ماه نیم توی مریض خونه ولایت بستری بودم، مگه یه بار دیگه کلا سرم میذارم؟ این دفعه خوب توی چمدون جاش دادم چون چمدون رو توی اتوبوس راه نمیدادن، سوار کامیون شدم، رفتم بالای بار، کامیون راه افتاد، چمدون هم همچین گرفته بودم، اگه ازرایل میومد نمیتونست از دستم بگیرتش، هر طوری بود رسیدیم بده، ده، کلاه و سرم گذاشتم و توی کوچه ایده راف دادم. کلاه اگه فرصتی گیرش میومد پرواز می کرد. اما دستم روی سرم بود و کلاه و محکم گرفته بودم. خلاصه اومدم و اومدم تا اینکه به قبل خونه رسیدم. چشمت روز بد نبینه. دیدم روی سر همه جوون ده کلاه مخملی است. پسر این همه کلاه مخملی و کجا ها همه اهل ده کلوم مخملی شده بودن دوستا منو رو چون از بس برای گرفتن کلایی که مدام از سرم پرواز میکرد خودم ها این ور اونور انداخته بودم صورتم همچی شده بود که نمیشد شناختش به هر زحمتی بود بهشون فهموندم که موسا هستم از اونجا هم رفتم خونمون دیدم بابامم کلوم مخملی رو سرشه پسر این چه وزشه شیرین خاتون رو پیدا کردم شیرین خاتون همین که منو دید گفت کلو مخملی رو سرت گذاشتی؟ گفتم الای خونت خراب بشه. کلو مخملی رو تو هم یاد گرفتی؟ گفت اوه مگه کسی توی این ده مونده که کلومخملی مخملی رو نشناسه؟ گلی تو دهمون مون سنت کلومخملی مخملی ایجاد کرده. گفتم حالا کلو مخملی چی هست؟ شیرین خاتون خندید و گفت تو به اون را نزن. مگه کسی بهتر از تو اینو میدونه؟ نکن امشب نوبت توی که بری پیش گلی واسه همه کلومخملی مخملی رو سرت گذاشتی. دیگه توی ده نموندم رفیق، راهم و کشیدم اومدم، پشت هم نیگاه نکردم گلی از بس منتظرم نشسته بود و گفته بود کلم اخملی کلام اخملی. از اومدنم نمومدی شده بود و آخر سر اون چیزی که نباید بشه شده بود محمد از جایش بلند شد و گفت والو رو روشن کنم موسا گفت روشنش کن یه قابلم هم روش بزار، از دیروز زنی مونده گرمش کن بخوری کمی سکوت کرد بعد گفت لعنت به این شانس رفی دیگه به مونده بر نمی